جلسه سی و قواهد فقه و اول حکومه تطبیق الگوی جناب استاد یوسفی در فرد و نظام اقتصادی بسم الله الرحمن الرحیم من الحمدلاللہ ربیه و سید و سیده نبی نبی نبی نبی محمد باعلو اهل سیام روحی و با تأکل بر خدای متعال تا اثر در رو درباره فقه مسائل فرد و نظام آغاز میکنیم در بحث از تضاحم در الگوی تضاهم در میان یک نظام چه نظام سیاسی چه نظام اقتصادی چه نظام فرهنگی چه نظام اجتماعی در نظام قضایی الگوی ما این شد که الگوی جناب سادیوسفی این بود که ببینم سطح تضاهم ها چه گونه است سطح ضروری و با غیر ضروری رو یک مقایسه فرمودن ما عرض کردیم ببینیم اون سطح یک ای که ما داشتیم در واقع یک نقدیم بود که در واقع این بود که اصلا شما اون سطح گوشایش رو حالا سطح کفاف رو که این واجبه سطح ضروری هم واجبه اما اگر واجبه سطح گشایش رو میشه رس که سطح کفاف رس میشه نمیذارید واجب خب این رو توجه بکنیم ای آیا این دوتا واجبن یا نه در واقع آیا مفهوم در واقع بکارگیری مفهوم ضرورت برای غیر کفاف و گشایش این به چه معناست؟ گشایش به این معناست که در واقع آن دو اصلا واجب نیستند. در این صورت چرا مفهوم تضاهم رو به کار بگیریم و به چه دلیه شما گی... به کار میگیرید هر چند هر چند تقدیم امور ضروری بر غیر ضروری خلاصه امری بدیهی است. از اون طرف آیا می توانیم بگیم آیا سطح کفاف واجب است و سر, سر... اما می توان در آیا می توان گفت که یکیش واجبه اما سطح گوشایش واجب نیست باز هم اشکال مزبور خلاصه وارد میشه این در سطح اینها و اون قسمتی که اصلا در واقع اصلا چرا این مفهوم رو به کار میبیگیرید این یه مقوله خاصی بود که ما بیانی میکنم که به نظر میرسه چه وست سطح کفاف رو بگیم واجب برخورداریش ممکنه واجب نباشه چه بسا در واقع خود چه بسا برخورداری برخورداری از سطح کفاف واجب برای فرد واجب نباشه اما تامین اون توسط دولت اسلامی برای عموم جامعه واجب باشه خب اینو باید بررسی کنیم در واقع این یه مقوله فقیه که باید مفهومش دقیقا طرح بشه می توان خلاصه این رو ما به این صورت بررسی بکنیم ببینیم خلاصه چه سطحیه و به کارگیریش در بحث دولت اسلامی هم خودش یه مقوله‌ایه تا برسیم سطح های بالاتر و سطح اسراف هم در واقع برخورداری از سطح اسراف هم برای جای تأمل داره خب این سر جای خودش اما حالا برگردیم اجمالا اون الگو معلوم شد و اینقللت های جزئی بود خب ما میخوایم ببینیم که این مقالوله ای تزاهم صرفاً بین نظام و در درون یک نظام یا دو نظام نیست یه جایی هم بین منافع سرد فرد و تزاهم در واقع نظام می توان رخ بده تزاهم میان منافع و مساله در واقع افراد رو داریم تضاهم میان منافع،, منافع و مساله فرد با نظام هم داریم خب اینم معقولش و روشن بشه خب الگویی که ایشان داشتن در واقع یک تقدیم ضروری و غیر ضروری بود در میان ضروریات هم اگر منطقه هم پیش میرفتیم باید میگفتیم ضروری از ضروری سطح کفاف رو زورش در این ز... کفاف و بشارش غیر ضروری هن. خب اینجا اگر بخواییم فرد و نظام رو بررسیبه کنیم همون مقوله پیش میام به تعبیرشان تعین اهم بر اساس ملاک تحصیل رفاه و مسئله فرد و نظام هم رتبه داره مسئله ضروری، مسئله کفاف، مسئله گشارشی پیشان می‌فرمائند که بریم ببینیم فقر مردم چگونه است، نابرخورداری مردم چگونه است، بر اساس اون ببینیم سطح این تضاهم رو تعریف بکنیم خب، اگر می‌فرمائند اگر اکثر غریب به اتفاق جامعه در سطح فقر مطلق باشند، نیازمند امور ضروری‌اند. اما اون بخش غیر اکثریت اونها نیاز ضروری دارند دوچار فخر نسبی هند. یا نه دوچار یا رفاه دارند خب امکانات عمومی در اختیار جامعه است اگر می توان فقط برای رفع نیازهای ضرور همه به کار ببره خب همه را تامین کنه اما طبیعتا در واقع در این مورد اگر امکانات برای رفع نیازهای ضروری ضروری و غیر ضروری جامعه کفایت کنه دیگه جای مفهوم تزاهم جای تر پیدا نمی کنه مفهوم تزاهم صدق نمی کنه. اما اگر امکانات جامعه محدود باشه و حکومت نتوانه نیازهای ضروری و غیر ضروری رو تأمین کنه صرفا می به تأمین نیازهای ضروری مبادرت کنه فرقی هم نمیکنه تفاوتی نمیکنه که این نیازهای ضروری برای اکثریت جامعه در واقع متعلق به اکثریت جامعه باشه یا به اقلیت اونها ارتباط داشته باشه در مجموع این معیارینه اقتضای در واقع قاعده تقدیم تقدیم ضروریات بر غیر ضروریات دوستان ببخشید من یه چند لحظه درو باز کنم این دوستان مهمانی داریم یه چند لحظه ببخشید ببینید اگر این نیازهای ضروری وجود داشته باشه تفاوتی نمی کنه که در ایفای در خلاصه کیفیت این مبنا در تمسک به این قاعده و این مبنا تفاوت تفاوتی نمی کنه که جامعه اکثریتش خلاصه ز ضروریات نیازمند باشه و در یا به اقلیت این وظیفه است اما جناب استاد یوسفی یه وقته این رو به این صورت تطبیق فرمودند که اگر اکثر قریب به اتفاق مردم جامعه به لحاظ رفاه در فقر مطلق باشند نیازمند ضروریات هستند در اینجا خلاصه دولت این امکانات محدود رو برای اینها به کار ببره برای برطرف کردن نیازهای ضروری اکثریت قریب به اتفاق باشه خدمت شما کنم دوستان صدا رو دارند پس اگه اگه مطلب برعکس باشه میگن که میفرماین که اگر یه بخش کوچکی از مردم دوچار فقر مطلق باشند باید امکانات عمومی رو برای برطرف کردن فقر مطلق به کار برد اما اونجایی که به هر حال اکثریت دوچار فقر مطلق باشند بخشی از مردم نیازهای ضروریشون برطرف شده اما دوچار فقر نسبی هم. اینجا تردیدی نیست که امکانات عمومی برای اون نیازهای اکثریت باید به کار بره، تقدیم اکثریت میشه. چرا؟ چون که نیاز ضرورش مونده. اما اگه مطلب برعکس باشه، اکثریت در فقر نسبی باشن، بخش کوچکی در فقر مطلق چی؟ میگن که و امکانات عمومی هم برای برطرف کردن هر دو فقر، فقر نسبی و مطلق کفاف نده. باید اول فقر مطلق رفت بشه خب پس اون قبلی اکثریت در فقر مطلق بودن دومی اقلیت فرقی نمی کنه به هر حال باید فقر مطلق مقدم بشه خب حالا اینجا ایشان آمدند یه جدول کوچکی طراحی کردند الگو همون الگوهه حالا فقط ما اونجا در گلگوی قبلی مسال این نظام با مسال اون نظام رو تحق کرده بودیم اینجا اشان آمدن موارد مسلحت نظام بر مسلحت فرد با مسلحت فرد رو مقایسه کردن پس در واقع مساله نظام. مساله نظام رتب بندی داره روت بندی مساله نظام چیه؟ مساله ضروری مساله کفاف مساله گشایشی خب، رتب بندی مساله فرد هم همینطوره مساله ضروری مساله کفاف مساله گشایش خب، اینجا الان ای ما اگر این دوتا رو مقابل هم قرار بدیم بر اساس الگوی در واقع الگوی ترجیح مساله مساله فرد و مساله نظام کدام مقدمه یا حالا بگیم مساله جامعه هم شبیه همین ایشان میگن هر جا که مسلحت ضروری نظام با مسلحت فرد مقدم بشه مساله در واقع موارد تقدیم مساله نظام کجاست؟ یکی اونجایی که مسئله فرد هم ضروری باشه مسئله نظام هم ضروری مسلحت خلاصه مسلحت ضروری نظام بر مساله ضروری و غیر ضروری فرد مقدم میشه وقتی که ما الان قاعده تقدیمی مسئله نظام همینه دیگه پس اینجا ببینید ما یه نکته که در جنبندی باید پررنگش کنیم ریز قواعد زیادی داریم یکی از اینجا چیه؟ تقدیم در واقع قاعده تند تقدیم مساله نظام خب اینجا یه اختزاش چیه؟ اینکه که ضروری نظام حتی بر مسائل ضروری فرد مقدم میشه چه برسه مسلحت کفاف و گشایشی فرد اما کجا مسلحته؟ نظام مقدم نمیشه در واقع مصلحت کفاف و گوشایشی نظام اینجا اگر گوشایش نظام بر مسلحت های فردی مقدم میشه اما مسلحت ضروری فرد چی؟ بر مصالح در واقع مصلحت در واقع کفاف نظام و گشای مصلحت ببخش کفاف نظام بر مصالح کفاف و گشایش فرد مقدم میشه اما مصلحت خدمت شما عرض کنیم ضروری فرد در مصلحت در این اونگو خیلی ظریفه مصلحت ضروری فرد بر مصلحت در بر مصلحت شفاف و گشایش نظام مقدم میشه پس باز اون الگوی مسلحت ضروری الان مهمه فقط اونجایی که مسلحت نظام ضروری بود مسلحت فرد هم ضروری بود در واقع مساله نظام چرا مقدم میشه به عموم مردم برمیگرده ولذا بر خلاصه مسلحت مساله ضروری فرد میتواند مقدم شود چرا؟ چونگه مساله ضروری نظام به عموم مردم برمیگشت یه نفر نبود آهات بود اون یه فرد اون ضروری بود اون ضروری بود در نتیجه در واقع کسرت کمی مساله ضروری باتری خالی شد بحث پس مساله ضروری رو بر غیر ضرور مقدم کردن در فرق مساله کفاف نظام بر مساله کفاف و گشایش فرد مقدم شد مساله یعنی یک طرف جدول خورده مساله نظام از بالا به پایین ضروری کفاف گشایشی در جدول افقی مساله فرد ضروری کفاف گشایشی اگر مساله نظام ضروری باشه هم بر مصالح ضروری فرد هم بر مسائل کفاف و هم بر مسائل گشایش فرد مقدمه اگر مصالح نظام کفاف باشه مسائل فرد ضروری مصلحت فرد مقدمه چون اون ضروری این کفافه اما کفاف نظام بر کفاف و گشایش فرد مقدمه پس اگر هم رتبه باشند اون مسئله هم رتبه مقدمه چه مثلت ضروری نظام در ضروری فرد مقدمه و سوت پایین هم که طبیعتا مقدم میشه مثلت کفافش متاخر از ضروری فرده ولی بر کفاف و گوشایش فرد مقدمه مساله سه گوشایشی نظام در مساله فقط بر مساله گوشایشی فرد مقدمه اما مسئله ضروری و کفافه فرد خلاصه مقدم نمیشه باشه بنابراین این اینجا این منطق روشن شد بحث سوم هم داشتیم که مسلح نظام مثلا اقتصادی با سایر نظام ها و مطلق نظام ها عملا الگو اونجا معلوم شد البته یه توضیحات دارن مثلا میگن آقا رشد اقتصادی داریم با امنیت اقتصادی اینجا ممکنه که در درون نظام اقتصادی با توجه به پیامت های مثبت و منفیش بگیم رشد اقتصادی مثلا اولویت داره اما وقتی که به مقبوله های سیاسی و فرهنگی و اینا میپرداسیم چه بس نظام اجتماعی در مقام تصمیم گیره نهایی امنیت اقتصادی رو در اولویت قرار بده یعنی یه مقداری اینجا زابطشون دچار مختل اختلال میشه و اون منطق قبل ایجاب میکرد که ضروریات مقدم بشه بر و برگشایش ها اما اینجا الان بیانشون این مقدار متفاوته چرا چون که رفتن در سر سراغ بحث پیامت های و منفی اقتصادی فرمودن اگر به پیامت های سیاسی فرهنگی هم باید ما توجه بکنیم ممکنه یه مقدار وضع وز... متفاوت بشه خب تصمیم گیری رو میگن بر عهده متصدیان نظام اجتماعیه اما یه جاهایی کننه میخوان بگن که بله 20 ثانیه دیگه حوصه هست عرضم برای اینکه که این قسمت مقاله تمام بشه یه مقداری اینجا ابهامی در فرمایش ایشانی شده که میگن آقا چه بس و بعضی موارد خاص ملاکش اهمیت بیشتری داشته باشه در مجموع میرن سراغ این که برای نزدیک شدن به سعادت و اون نظام ایدئال کدامش مقدم الحمدلله رب العالمین